برسول <سؤال> الله و آزهاری از که بعد در اصول محفظ شد و بعد در مناسبتی هم کاش به نحوی کشیده شد و محطه نحوی هم به دنبالش داشت بخص استثناء متعقده جمعن بود خاطر اینکه این مورد در واقع هم استعمال شده بود و یکی دو مورد هم از سنت بود موارد هم از سنت بود این بخص در حسول چدا رانه مورد بحث سا را اگر جمله متعدد باشه به استثنائی بیاد آیا به خصوص جمله اخیر برمیگرده یا به کل جمل کلام هر شد در اون قرن دوم قرن فقه هاست و زیر اختلاف اساسی رو در همین حد، قضیه قضیه به دو نفر نسبت داده شده مثل ابو حنیفه که قائل بود فقط به اخیر و شافعی که بوده به همه را می‌گند. لحظ بعد ها که این مسئله بیشتر موزه سنگ کارو بحث قرار گرفت، سعی شد برای اون نکات دیگری که به لحاظ اصولی چه به لحاظ یا جهات دیگه نحوی اضافه بشه. یعنی به اصطدار مسئله اساسا ترکش در این بود که چند جمعه از تو این استثناء همین ذات رضیه ذات مسئله آیا به جمعه اخیر برمیگردی یا مجموعه جمعه لیکن بعدها تفصیلات دیگری هم داده شده و در فقه شیعه هم در اصول شیعه هم همینطور شد و همون حقوالی که تمریباً در آمنه بود این هم در به ما جاری و صاری شده خب یه در می رفتن به اخیر میاد، یه در می گفتن که به همه میاد، یه در می رفتن لفظ سلامیت داره مشترکه حتی به همسی به لغت سلامیت داره یه در می وقت رفت نمی دونیم اخیر یا بدیم توقفه است و بعدها تقاصی دیگه یه آشه آشه اضافه شد مثلا هم هستیم مردم تفصیل خواهر شدن بینید که قبل از اون الا یک چیز باشه یا متعدد باشه خلاصه تفصیلیشون اینه اگر متعدد باشه به برگرده. اما اگر یک چیز باشه نه این تفصیل رو با یک مختصری تغییر مرمونایینی هم داره بره تفصیل استاد میشه اما مرمونایینی هم داره برد از اللهم هست تو اون یک چیز بودن رو هم مرگ و دو فرض کردن باید موضوع یکیه حکمش مختلفه گاهی به اسطلاح موضوعات متعددن حکم یکیه مثلا اول اکمه علما و شعر و نهات اللا فستان ببینه حکم یکی اکرام اما موضوع عرض شده یک استثنان باید این به خلاف این موضوع یکیه مثلا العلماء اکرم هم حضرت هم اعته هم اموال هم کارلز هم می‌سازند. چند توجه؟ آماده برای موضوع یکیه. ما هم آرخوی عبدالله نست. این کلی تفصیل دادن. اما یک تفسیریان دارم اما خلاصه ای تفسیریشان اینه شما <تصفح> اینکه ایشان یک نکته خاص تنی برای تفسیرشون هم باید ندارند. البته در خلال بحث که بحث موضوعی مصداقی هم انجام دادن و آیه معروف قصد و هم متعرض شدن و فرموندن به این که استثنان به همه برمیگرده و نکته ای او رو عبارت داده این قرار که موضوع یکیه الگین یعنمونن محسنا چون موضوعش الگین یعنمونن محسنا سه تو حکم آده فجده دو رو تمامین الان تقوی الله هم شاهدن ابدا مقالای کامال فاسقون الا لغین تابو پس این الا لغین به حدثه میخوره به حدثه برکنه خودشون موضوع یکیه صدرش وحده به موضوع ظاهرن ایشون مخاطنه ایک استظهار ارخی بکنن که اگر یکی بود طبیعتا اون استثناء به همون یکی میخور حالا اگر یکی در نهای موضوع بود یا یکی در نهای موضوع بود یا تردیلی اونجه هم نداره چون یکیه لذا استثناء به اون میخوره و اما اگر متعدد بودن هم موضوع و هم محمولن اون لطفرد به خصوص اخیره میکرد به تقریبیشون ندیلی نداره که به بقیه ارکار باشه از کلم به لحاظه ایشون به همین مقدار اختفای کردن و که این بیانی مرحوم های بروجهری دارن البته این مختلیشون نفهموندن اما مثلا معیده مختل مرمو اصطاد هم میشه چون اشون دو سه تا مقدمه رو موندنجن به دلعب اصطلاح در عباسشون گردن یکی این که آیا حقیقت استعمال جعب لفظ علامتاً للمعنا که ادهه قاعدنی ها اخناع لفظ در معنا که خود مرموان رو و اصطادشون تاکیفه قاعده یک نقصه چی نسته معانی حرفیه معانی جزیه هستن مندکه هستن و این اندک مندکه در طرف این هستن روی این دو مغنانیشون اینجور نتیجه گرفتن که اگر مثلا یکی بود مثل اکم العلماء و شعراء و غزباء این الا استثناء میشه قرارت میکنه خصوص اکرم رو خوب. یک معنی اندکاکیه بین طرفه این بین حجوب اکرام و فساد، این معنا رو به صورت الله میاد قرد میکنه این نسبت رو پس یکی میشه و هزه اگر موضوع, موضوع واحد بود حق متعدد شد چون موضوع واحده میشه بینی استثنا خود به اون طرف موضوع که واحده چون طرفش واحده معنی مندکی بین او و احکام متعدد اما اگر موضوع حق متعدد شدن مثلا اکرام علماء بکن با نحوی ها آمد بکن مثلا سرفی ها رو دعوت بکن ایشون گفته در این دیگه اگر را بگیم که این نسبت اندکاکی رو داشته باشه در تمام جملات این معناه که استعمال لحظه مشترک در از معناست. است یعنی باید معناه رو در چند لحظه بکنه و این نمیشه اگر لفت رو علامت بدونیم اشتاله در اونطور افناه لفت در معنات نمیتونیم افناه بکنیم در اونطور از سلم اصطلاح نفرمونه من از جمع و تلفیر بین کلمات این دو بزرگوار یعنی ممکن است نقطه فنی در کلمات آقای کویی این باشه این یعنی اونی که منشه ارتکازگیشانه تصدیح هستن خودشون که اگر یکی باشه چه موضوع یکی باشه چه معمولی یکی باشه رو یعنی چه متعلق و متعلق یکی باشه چه موضوع و متعلق یکی حکم متعلق حف. همون یکی که استثناء به همون یکی میخواه اما اگر اینجور نباشه متعدد باشن چون استعمال لبذر از معنا جایز نید سر این که این بحث به جهت لغت هم کشید میدار شمی بود مثلا بحث دامنه این بحث به لغت منطقی شد این بود و صرف این که مرمون صاحب معالمم بحث معنه حرفی رو در این بحث بار همین بود نفش این, این بود که اگر ما آم گرفتیم موضوع اون لحب رو پس میشه به سه تا جمله برگرده اما اگر خاص گرفتیم به اون جمله اخیر که دیروزا نشاره رو کرد این هم اثارا ما که است همی روغان به تعییل کلام های خوییش این نیست مراد های خویی نیست من نسبتی میدونم به ایشان که این مردان این نیست و این ایشون همون ظهور و عرفی رو قائلن. یعنی در نظر و وقتی موضوع یکی شد استثناء باونده قبل از این که وارد بقیه بحث بشیم این نکته رو اینجا لازمه از بکنم از کردم ما یه مشکلی در داریم، که در یک بخش ابهام داره مسئله فرسی همین الا این الا ابهام داره که به موضوع میخوره یا به حکم میخوره یعنی اگر ما در لغت عربی یک لحظی داشتیم که برای اخراج موضوع بود یک لحظی هم داشتیم برای اخراج حکم بود خیلی راحت تر چون موضوع وقتی واحد شد و لحظم برای اخراج موضوع شد براحته و از کدید سابقه اگر ذهن عاوین گشاوین پیش دوستان مرحوم نجم الایم راضی عقیلهش این بود. سن نجم الایم عقیلهش این بود که الا برای اخراج موضوعیه. به واسه از الیام خوندی در شرح کافیه ایشان اشکالش این بود که اگر الا برای احتساب باشه تناقض لازم میاد شما وقتی می جعل قم یعنی قم اومدن یعنی زیدان تو اول بود اما الا زید نعمل. این زیبایی نما بود که نمی‌شه این اشارات تناقض ایشان مطرح کردن در شرح کافی خوندم این عباراتیشون رو لذا ایشون اینطور پیشنهاد معلوم نظر ای علی اینطوره که این الا بر می‌گرده به هم یعنی القوم الا زید اینجوری وقت بعد از اینکه این, این استسار کارش اخراج و احتساب بود بعد از اینکه زید رو از اون, اون خارج کردیم، اون وقت نسبت مجی دادیم بس اولا استثناء از موضوع، یعنی اول از موضوع خارجش میکنه بعد که خارج شد اون رو نسبت مجیدش میدیم از اگر کسی این مبنا رو قبول بکنه فرصمی مبنا بر این مبنا بگذاره همین که اخراج موضوعی است خب این راحت دیگه چون ایشون میگه همیشه اخراج, اخراج موضوعی است موضوع هم واحد شد خب معلومه چون احکام متعدد داره اخراج موضوعی کرده اون احکام همه به حساب تخصیص می‌کنه تعریف مقید میشه این حرف خوبیه لکن راستش در محلش چه ثابت نیست یعنی ما الان در لغت عرب نداریم چیزی که دلالت بکنه بر اینکه رفع شده برای حکم اخراج حکمی یا ورد شده برای اخراج موضوعی این رو نداریم من در وقت محروم و هم هم باز متعرض شدم. مثل همین آیه مبارکه سلام و نهیه حتی مخلع الفرح این هم باز وقت عرب خصور داره در وقت فارسی نسبتا این داریم بود اینجا شد زبان و فارسی داریم اون یکی هم فارسی هم نداریم مثلا قوم رو افتحان بکن مگرده این دو مگرد برای هر داریم. همون درنتی سلامیت و مطلع الفرد با مساله الفج چرا فارسی و عربی فرق میکنه مثلا در فارسی اگه یه واژه گفت اون شب در از اون شب انشاء تا طلوع فجر سلامت است این تا طلوع فجر خیلی برای موضوع میشه اگر رو اون شب سلامت از تا طلوع فجر این تا طلوع فجر برای سلامت میشه یعنی تو زبان فارسی این فرقه میشه گذاشت همین فرق با سوزان عربی نیست این این سلامونهیه حتی مثل الفر سلامیت هر دو معنا رو داره اون شب تا تلوه سلامات سلامت هست. اون شب سلامت است تا تلوه فرق وقت تو عدات الله و استثناء این مشکل بیشربه نه در زبان فارسی و نه در زبان عربی عداتی نداریم که اخراج موضوعی یا حکم بکنه اگر هم بود خیلی راحت بودیم میفهمیدیم موضوع رو خارج شده یا بکن رو خارج شده که اینکه مکنه این با همان پرانتز بود که ما این مشکلی که داریم راجی به صحبت های مرموم استاد بود ارد کردیم صحبت رو که انصافش مطلب ایشان حالا شاید یک نوع مثلا مواقع افتدایی و اورشی به ذهن احسان بیان اما بلاخره بلحاظه سلامیت لحظ سلامیت داریم سلامیت که از موضوع یکیه یه زید رو اکرام بکن مثلا احترامش بکن سلامش رو کن مهمونش رو مگر اینکه کار وزشی انجام بده یعنی این مگر اینکه کار وزش مال مهمون باشه مثلا به موضوعی که باشه در حد احتمال هست رو لازمه وقتی سوادگی رو بکنیم برای اینکه حتما به اون اولی برمیگرده یعنی به جمع احکام بر موضوع برمیگرده جمع احکام پیداوره نیاز به دلیل داره یعنی این انصافا چون لحظ سلامیت داره به این مقدار اتفاق کردن کار مشکلیه به این مقداری تیشون هم مضافن اون نکتره که عرض کردم حتی در مثالی که قرآن استاد برای قسم دوم دادن که موضوع یکیه حکم تو اون مثال هم مشکل داره هم از این طرف هم از اون طرف از دو طرف مشکل داره یعنی چه سن ایشون اصلا بر همه برمیگرده یک مشکل خب فرقیه که اصلا مگه ایشون بگه دلیل خارجی اقامه شده مشکل تخفیچینگ اگه توبه کرد بگیم حد توبه ثابت میشه مشهور بین اهل سنت که تصریح کردن علما هم علمای موحد ظاهرش اینه که قبول دارن که ثابت میشه ظاهرش اینطوره مساله شخصی نیست نمیه قباله یک اشراف اینا که اونا میگن آ شما اگه وقتی میگیم به همه بر میگرده. قبولن خلاف فاسق واس کلاب مدرناسف اصطلاح سانیان اون نکته ای که به لحاظ ماده بود، اینجا مالن گفتن چون دوهاش، بسیاری نهی، امر و نهی زجر و بعث جمله این شاید یکیش دوسر جمله ایسمیه است. فج دوهم سمانی جلدی که امره ولاد تقبل لام شات امروزان نهیه. این اولاد که هم فاتحون، هم الفاسبون. این چون جمله اسمیه هست لذا الارین تابو به این برمیاره این یک شبه یک شبه بیه باز غیر از حالا جمله اسمیه چون در این حکم ثوم حکمه به فسقه و به حسن به مرتقبات متشبعه فسق زیر بنای شهادته یعنی اگه شهادتی قبول نمیشه به خاطر فسقه چون حکمه به فسقه هست و نفی شهادت هست به این صورت میشه که این فسخ مانع قبول شهادت طبعا فتخ ربطی به مسئله شلاق خوردن نداره انسان ممکنه عادل هم باشه شلاق رو بخورد نفره قلب کرد پسی رو ولیتا ادهی معتقدن به خصوص اخیر در میگه لکن به ملازمه دومی رو میگیره اما اولی رو نمیگیره تفسیر اینجوری اعتان میکنن اولا خب چون وقتی گفت لذین صحابه مالا چون اول اول تغییر یعنی اول یا اضافی سه از قبیل حس و اضافی میمونه عبدیتش اضافی است الا لذین صحابه روشنی ست اقوال در این مسئله رحمدالله زیاد در آیه آی مبارک حالا ایشون مثال آوردن خود این مثال ایشان خیلی روشن دلید. که قفلی باشه که ایشان و دیروز از کردید که از اجایی که در روایات ما هست یک روایت در تفسیر یه مناسبتی آیه آمده اون هم همین ابهام رو داره از که در کتاب حدود در این شاک جدید آیه ما آلوید کتاب جلده 28 در مقدمات حدود اگر آ خواستن یا فهم. اشاره میکنم در مقدمات حدود باب 16 افواب مقدمات حدود باب 16 رو برای توبه قرار داده که توبه مسته تحده اون روایت اول باب صحیحه لیکن این بحتش در مورد سارهه که اگر ساله ما در مورد این چندتا روایتی که اینجا هست در مورد شیز نیست در مورد قرض نیست که الان محل کلام ماست لیکن یک روایت ما دارین شده از اون روایتی که ارز کردن یک روایت دیگه در این باب در, در اصلا در همین جن در باب اقسام حدود زنا در باب زنا نقصی و اونجا داره در اونجا در دو 2 باب 2 این بس براخین بوردین در باب 2 حد قرض در باب دو از کتاب این یک که فعلا مشهوره به نام تفسیر علی ابن ابرائی این که ما از کردیم این تفسیر این کتاب موجود که مال علی ابن ابرائیم نیزی که قدیه از نیست. اما معلف این کتاب هر کسی باشه مقدار زیادی از تفسیر علی ابن ابرائیم نقل کرده و عرض شکه تفسیر خود علی ابن بعضی از کلمات ایشان بوده در تفسیر آیه که نوایت نیست، بعد درشان روایت بوده صاحب اون کتاب از هر دو قسم کرده این میگه سمه خال سم این قاله برمیگرده به علی ابن ابراهیم چون دیدم بعضی زهابون شیعا کنم خالقه اون به همون ساله ساله برمیگرده به علی ابن ابراهیم یه عبارتی در تفسیر قومی در این زیده آیه داره بعد دیگه برمیگرده به علی ابراهیم شروع میکنه اواتیشان بعد علی ابن فن ان الحماز ان حريز ان ابي عبد الله عليه السلام قال القابفه و يجلد ثمانين جلده ولا تقبل له شهادتنه ابدا الا بعد توبه شیخان که اجازه من مرشد رو پیش از اینکه آیه حدیث مبارک حل بکنه مشكله اینم بعد از دو تا همون هم مشكله آیه بود متاسفانه تا به پس یوسفه همانین جلده لب و لا توب ولذو شهادتونه ابدا الا بعد از توبه او یکه زدنا نفسه او یکه به نفسه دیگه من جروب گفتم خودش اعتراف بکنه به جو حالا این یکه زد به نفسه اینج به تعبیر او اومده این بحثای خاصی فرقی داره که این احزاب اصلا توبه و شذو توبه است یا نه من الان نمیخوام وارد حوال اینکه که اینجا همین این بد نیست. این در این چاف سطحیه 177 جنده 28 سطحیه 177 رواست پر به حاضر سن مشکل داره هستند اصلا این کتاب علی این تفسیر علی این بیگه این متن موجود ای کتاب موجود ثابت نیست برحال یک آقای در قرن مثلا چارم کتاب تفسیر علی این رو با یک سند مجیهول از ایشان نقل کرده سند و سنده مجیده و عللن نمیشد نه معلل دقیقا معلل این کتابی که الان مشهور به اسم عبدالرحمن علی بن خاطر هم باشه و اون طریقی که ما و خیلی از روابطی که در, در اینجا آورده منفرد است و همین علی بن رباه به این نسخه اینا هم درست میشه. لکن این مشکل اینه که الگار در تمانی جلده الا قاد در جذر جلده جلد و لا توبہ لا وشازن الا بعد از توبه ما اینجوری به قرنه توبه بازگرده در و احتمال داره به هر دو برگرده یعنی به هر حال ما دیروز هم در بحث اشاره کردیم که فیلسوفایی که راجبی به قران متن قرآنی متن قانونی است در متون قانونی دقت بیشتر میشه اینشون نقل احتمالی تمایز شده نقل معناست یک مقدار قرار بگیره که شمول بیشتری داره چون که رو وارد اختیار ما نیست الان جز از این کتاب این الان اعتماد و داره و مشکلی مظاهر که کنید که روایت حریب و مریضالله حقیق روشن نیست و برها قبول این روایت بله حاضر را و مصدر خالی از شکره اشحال نیست این یک مصدر ما از کردیم که هر هرولی بحث به این صورت بود که یا بر به همه یا بر نمیگرده به همه بحثش به این صورت بود بله بعدها یکی عزه گفتم به همه گفتم برسید اما بعدها ما مسائل دیگری هم یعنی فروع دیگری هم اضافه شد که الان مثلا خوندیم به نصرید استاد سه فرقه کرد مسئله رو به سه صورت در آورده نشون و آیا این مثلا کاریس جدید که علمای ما کرده اصلا از کردن این که استقرستان که کرده خوب بود که می ما در فقر داریم به فیلی استقرست میادن فردن برای یک مقدار آگاهی یعنی میخوام خیلی الان وارده بحث تفصیلی بشه. بله نسبت به اهل سنت یعنی تعجبه که این بحثی که مثلا استاد رو در این اواخر. همین تقسیم بندی شبیه تقسیم بندیشون رو که سریع اسم کردن با یک تفصیل بیشتری هشت اسم کردن لیکن خط متکلمی یعنی عقل ها یعنی متکلمی که این مسئله رو بررسی کردن من الان از این کتاب احکام آمدی جلد یک و دو با هم چاپ شده شما گذاشت با همه صفحه خونستازشار مسئله چارم از موارد تخصیص و الفاظ تخصیص کیشون در اونجا جمله متاقبت بالفا و از تاقبه ال استثناء رجع از جمیها اند عضو شافعی و از جمله آخرین اند خواب علی حنیفه. و قاضی عبدالجبار که این از دیگر تازه اغلب معتقدان است و و قبل گویند بصری و جماع از من المعتقدان خود دختر کنید این اغلی جرایها که در حسول وارد شدن بفتن امکانش رو اطل جملت ثانیه شبیه این بحث آرکوی انل اولا یعنی جمله اول یک حکمه جمله دوم جداست که انم اصلا نب... ببینید این جدایی رو اینجور معنا کرده میگه جدا به این معنا که یک موضوع محمول رو هم فهم کنن توی جمله ثانی چیزی نباشه به جمله اول برگرده کاملا مستقل باشه و لایز مرا در جمله دوم شیون مافل اولا فل استرس در این صورت این چهار صورت میکنه مفصلشون به لختیره چون،, چون هنوز معلوم شد جمله چنده بعد میفهمد که ور دالیک از اقسام اند اربه لازم نیست من همیشه بخوام خصوصا مثلا کدی کاربردی نداره چهار قسمت داریم مثلا نوشتم اسم اول تخته از جملاتان نوعا. مساعد به اكن بني و نهات البصريون الا البقاعده بغازن بغدادي بله جمله اوله امر و ثانيه خبره و نهات البصريون ال این اگر اینطور شود بر ميگذرد به اخير قسم دوم منطقه دو نوعا و تختل با اسمن و حكمه اكن بني تميم یعنی اکل مورد رظر برادی این آیه خویی اسم چی گذاشتن متقایر گذاشتن موضوعا محملن آیه اینجوری فرمودن یعنی که اکل یکی بنی طه ربیعه مثلا میگه بنی رو بزن ربیعه رو الا تواز مثلی که صاحب قران امران پس اون چی بیوشه آیه خویی فرما اینم مثلا میگه برمیاد برخیر اونی روی که الان آنهای خوبی فرمودن به صورت یک تفسیر بیشتری در مصادر اهل سنت آمده و که از اصولین صرف نرم نشده از نهرین هم صرف نرم نشده از متکلمین نرم شده یعنی آمدن اینو نوع اقلانی عقلانی برای کلام کردن دسته سوم ان انتطقه لا و تشترک ها حکمن لا اسمن حالا یشون تحرید و حکمن لا اسمن آیا کویشی می‌فهمند این جا رو می‌فهمند که نهشون یکی باشه، حکمشون به سلام یکی باشه، اما موضوعشون دو تا است، لکن تکرارش اینه ما آیا کویشی که دوست مغازه تشریحشون به سلام بله مثلا سالم علا بنی کمی و سالم علا بانی رابیه الا نه اتا از چه حرف می‌نده؟ این همونی هست آیا کویشی می‌فهمد؟ اینگونه و اینگونه اکثر ملکالما و اعظم و, و اکرم از تجار مثلا الا قساغنه یعنی اکرم مثلا اینجوری اکرم علما و شعرا و ادبا و اکرم اکرم رو تکرار بکنه همین که تکرارت برنامه درسی هست ایشون مخن میگن اینطور که اگر حکم یکی بود و کل موضوع متغیر شو اونجا هم برنامه درسی قسم چهارم ایشون یکی باشه و اسمشونم یکی باشه اما حکمشون مختلف باشه ولیکن حکمان در غرضی از اقراض با هم نیستن یعنی چی؟ یعنی اون دوتا حکم ای با هم ندارن مثلا اگه گفت اکرام بکنم مهمان بکنم مهمانی با اکرام رابطه داره مهمانی کردن با اکرام رابطه داره مثال ایشان مثلا اگه گفت سلم بنی بنیتنی و سعجر بنیتنی خوده قد مکنی؟ این آمده این ت... آیه خوی هم این مثال رو زدن اما این آمده نکته رو این گرفته میگه گاهی اوقات اون حکم با و حکم اول رابطه دارند مثلا این جوده که سلم علا بنی و عوض ما و عوض بنی ردیه مثلا بنی تنی. این مهمان کردن با سلام کردن رابطه داره اگر رابطه دیده شد به همه برمیگرده رابطه دیده نشد بردید تصور بکن وقت اشکال ما بگید آقا همون اشکال اصباح خود احسانی که شما میفهد مثال در شریعه الوالد شده وقت باست چهار تا درست کردن برای اینکه که به کل برمیگرده خودیشون اما اگر جمله اخیر اضراب نباشه از اولا ها نوع و تعلقه به ها نوع تعلقه فل استثنان راجعه اونه من ایشون یکی اینم چار قسمه مثلا آقای خوی در این مثالی که ایشون میذاره اکرم بن و سلم علی بن امین ملت صلوات که اینجا به اخیر این میگه به کل برمی‌گرده سر اختلافشون آقای فی میگه چون سلم و اکرمه بالا موضوعش یکیه چون است و تکرار کرده این برمیگرده به خصوص اخیر اما اون آقای اباضی عبدالجبار چی میگه میگه درست دو تاست اما عرفیف هم اکرام و تسلیم از یک بابه اکرام احترام یک انسان و سلام بر او تقریبا از یک بابه یک کلنده حالا مثال دو با. انتتحه در جملتان نوعا و تختار پا فکران به اسم الگولا مزمر این رو اصلا آقای خوبی نگو مثلا اگر گفت اکرم بنی تمیم، دقیق کنیم اکرم بنی تمیم و سعجی رو یعنی چیزو بکن باش اغبه اجاره با اجاره کن و سعجره هم و ربیعه الا فعال و سعجره هم این سر در اینجا و سعجره هم یعنی سعجره همی جمله دوم باز ارتباط داره به جمله همین که ارتباط پیدا کرد باز زمین و با استثناء به هر دو برمیگرد درسم سوم اصل مثلا اکرم بن تیموری و ربیعه فقظ علت و عامل نما این قسم هم آیه کوی متعرض شده که موضوع متعدد باشه حکم یکی مثل همین قاضی عبد الجبار گفتن به همه برمیاد قسم چهارم یختر نوع الجمله متواقبه لانه قد ازمره جمله اخیره و متقدم یا غرضشون یکی باشه یا درش چیزی باشه به اون برگردی یا قرض یکی باشه فإن لا ال... لو... کون غير ذل احکام مختلفه اوه که اون فی آیه قرضه وقتی جناب آقا این مثال آیه قرض رو از اینجا آورده فإن جملتا مختلفه النوع چون بعضی جمله اسميان بعضی جمله که آخر یه شرح مفصلی یعنی یک توضیح ایشان مطلبی ایشان راجع به این مطلب از قاضی عبدالجبار نقل بعد خود جناب و آمدی خیلی مفخصن بعد عورده به که حجج اول کسانی گفتن به همه برمیگرده باز یکی این هجت ها رو منابشه کرد. تا هفت حجج رو اما حججی که کسانی گفتن به اخیر برمیگرده حجج اونها رو هم همه جهت منس و همه معبول چند تا حجج رو هرده الخامسه از سادسه و شیشتا هم برای قائلینه به جمله به اصطلاح اخیره برمیگرد کسایی هم که قائل به سه اشتراکن ستا, ستا هجت دار اونان هم متعرض شد خب خیلی مفصل شعر داده و یک مفصلی بود خیلی از افخاص و اصولی خیلی سر سامانه درستی پرد و پراد آن خاصانستاه خارجی مگه این کتابو فن بحث خیلی به محصر علمی بر نمیگرده انصافا یه اونطور گل نمیاره بحثی لازمی که باز با سفر احمد به شهر حافظ چون در حقيقت افسانه است و افسانه موثرات را چی خیلی حرفای اساسی داره انصافا اون مراجعه کنن و برای این کلمات نیست من حس میکنم خونده چندش رو سر کنم در باطل روشتی شرش دیدون توی بیرشتی علایه حالا این هم راجب به این قسمت پس بنابراین این مخواستم این توضیح هم که این مسئله اون جهاتی که در اینه یک طرفش اینه که ما اصلا مسئله رو کار به این بر نداریم مهمش تعدد و تکسره چند تا جمله شد با یک استثنا ده همه برمیگرده با یک استثنا بعید برمیگرده اون این چند جمله هر معنی میخواد باشه اینا مهم نیست این 8 نویی آیه... که ایشون درست کردن آره چیزی زده کردن مرقوم آیه ناوی توثیق کردن منظور واضیا که یک چیز دیگه اضافه کردن چون ایشون اضافه کردن که اون حرف استثنایی که ما میاریم اون استثنا با معنی اسم نمیاری مثل سبا یا با حرف میاری مثل الا تازه اون استثناء در جمله در همون پشت سر همه یا نه یعنی در یک منفصل تخصیص منفصل مخصص منفصل یک چیز اینه که مفهوم اضافه شده اضافه به بر مطلب پس بنابراین اونی که روح مسئله از اینه این تعبیر این که آیا نقش تعدد اختزا میکنه به همه برگرده یا به خصوص اخیر برگرده در صدر اول به همین مقدار استفاده شده این فروع و تفریعات و صورت بعدها اضافه شده حالا بعدها چیزی دیگه هم اضافه شده ارز میکنم این تا اینجا یه اجمالی از از علم لیکن بعدها با اصول ما در این حرف این آه که از اصول ما هم حرف شده بود. بعدها در این تا خاضی از دو جباره بعدها در اصول اهل سنت باز هم اضافه شد یعنی باز هم هم به لحاظ اقوال و به لحاظ خصوصیاتی که در مساله هست من چون نافع یک جدی فقط به مقدار اشاره توضیحات مفصلش رو الان ارز نیکنم البته رده از مساده هم الاحکام هم در این کتاب به عنوان رعی شیعه هم رعی سید منتزار رو آوردن کرده است که سید منتزار به در این کتاب البحرال محیط که خب این صفحه این کتاب رشنگیه برای محصان اقوان بحثه این بحث رو مصرف فرمدن که آیا استثناء برمیگردیانه در صفحه 49 جلد دو این شاپی که دستانه اون وقت یک مغزاری حالا یواشواش اون استظهارها رو روشن بکن در اینجا بعد از این نه اولا ایشون اقوالی که نقوی میکنه میگه چند قوله یک که برمیگرده به کل یک دو برمیگرده به اخیر این صفحه یه صفحه برداشت سه ترقف بین امره ممکنه به اخیر ممکنه به چهار امکانت جمل کلها سی قتل مقصود نواه مثل ما خلاصی گفتم انصراف از جمعی و انصیاب لاعراض مختلف اختصاص به لحیه یک معنی بیمانی شبیه که مذاهبی تردد دیگر پنج اگر واب واب برای اپتدا باشه اینه اگر واب برای اما اگر واب برای اپتدا باشه نه برای عاد اختصاص به لحیه اگر تردد داشته نه عاد برای اپتدا یعنی بیشتر افتر روی وام رو حساب کردن. بین این جمعن. شیش انکانت الجملت و سانیه اعرازن و اضرابن ال اولا و ایلا این صرف این شبیه این الان ایشون نصف دارد که خوندیم عبارت عبال حسین اینکه این که به اقوال. پس اقوال رو در کتب احرستان شیش رو گردن. شده اصل ا این یک نکته یک نکتهی که دیگه مخواب اینجا بگم اینه که با مراجعه به استدلال شافعی یک مقدار حال هوای مثلا به نظر روشن میشه ببینید در این کتاب الام شافعی چون این حالان به استاد خودشون عراقی ها یا کوفی ها اصحاب ابو هنیفه با شافعی بد بوده هست شافعی هم با اونو بد بود یه مقدار مناظراتی شافعی با اونها داره همین یعنی الام هم داره جدازانه هم داره در هاشی علام شاک شده با به اختلاف شافعی و عبی یوسف نظره شیفانی که در هاشی شاک شده به صورت قال قلطقاله و قلطلفو قلطلفو تو خود علامم هم داره حده از این مناظرات رو داره این یک بحثیه ایشون در اون بحث شهادت در قاضر قال از شافعی لمن یونازر رو و که این منیو ناظره و از کوفی ها هستند که غالبا هنفشیه. ارائه ترجمه‌هایی استدلارش کافی می‌خواد بذارش بشه. ارائه لا اکلمو که آرمان، و از که بیتان آرمان، و لا ما، و لا تمام آزم و این نکه غیر و حمید اندی ولا اکسوک تو آدم خوبی همیستی لباسم بس نمیدم الله یک الله تو آخر او رو پس این بحث استثناء رو با این ها میگه پب این انشاءالله بگه به همه برده نمیگه بگه بخص میکن چه نحوه رسول الله میگه این انشاءالله به همه بر نمی کرده میکرد این عواملی بوده که بعدها متکلیم اینم که متکلیمم به این مسئله کشند دقیقی مثلا هشتا مطلب عورده آخریس گفته ولا از سوک انشاءالله بعد بگه ایخون الاسطسنا واقعا علاما بعد غیر حمیدن اندی ام علل کلام کله این انشاءالله به همه برد میگرده قال بله علل کلام کله اونم قبول کرد خست میشون اونم قبول تسل که اینو انشاءالله برمه خب این واضحه این اولا از کردیم اینکه مشکلی که ما داریم مثلا مثل شافعی که واقعیش با اطراف باید مهد ملایی هم هست میداریم مولا ما همه هم هست خیلی این برومد نرفته با این ملاییش نتونسته فهم مطلب درسته اما ما بحثمون که یک مطلب قانونی این کلام قانونی نیست کلام ارپیه اصلا این بحث قانونی نداره که من مثلا با تو سفر نمیام بو شه چون که ان شاء الله اینو برسه قانون این ان الله شما قرینه ترفعی داریم که انسان در هر فعلی تروث به انشاءالله الله پیدا بکنه و این انصاف قضیه اگر بخوید صادقن به قولهای دقیق بشید در حقیقت شرط این استثنا از لغت محاوره اون زمان وقتی میگوشن استثناء مواردش ان شاءاللههه میشه میذیشو مثلا خیلی از عبارات در شعر هم داره مثلا ولو قال بعشه كهادا و شخصا این استثناء قال ان اصلا مثلا استثناء یعنی وکه این ان شاءالله گفته باشه این مجازه اینو اصطلاح اصلاح شده این شعر معروف مولای روم و مولای روم رو اگه شیده باشید ای بسا جانی که استثناء نگو جان او با جان استثناست گفت. مرادش از استثناء اینشاللهه اینه بود. هی جانی که استثناء نگفت مرادش از استثناء الله گفتنه. میگه ممکن است کسی به زبان حال استثناء نگه یعنی انشالله نگه. اما تمام وجودش اللهه. اون احتیاج به زبان نداره. او با حد وجود خودش الله میگه. جان او با جان استثناست گفت. ممکن است استثنانی. پس کلمه استثنانی این گفتن اینا مجاسته. این شاء الله که استثنایی ما باشیم و ظاهرش که شرطه. الان به لحاظه املا آموندونم. مطلعشون که فیلن که مفتول میشن، میزن. سابقه این شاء الله رو این رو با شائعه مختصر میزن. حالا با خاطر اینکه رسمال خط جدید این رو جدا میزن. شاء الله رو جدا میزن. این هم که سه اندوئی اصلا که این انشاءالله شاء الله استثناء نیست اینا مجاب هست بعدم خب ما میدونیم این انشاءالله چون در واقع تقبلن لشه این, این نقطه قرآنی داره برای هر کسی همش استثناءه والا تقبلن لشه این, این فازال گذشته الا ان یا الا یا داره استثنا بده شد ولی اگر خیلی بخوایم مله قتی بشیم در واقع شرط این ان که باشه و محل کلانو ما هم در است نه در شهر حالا وارد این بحث ملوناقضی نشید این یک نکته قرآنی داره ولا تبعولن نلشه این هر چی که میخواد باشه این نکته سبب شده که اینچهالله به همه برگرده نه اینکه پنگ تا فعضه کرد اینطور نکنم نکنم نکنم اینچهالله چون خدا بر ولا تبعولن نلشه این این میفایلون داره که الا عنی شاعله در از این نکته طبر شده که ارجاع بود این چرا توی منحنافی این چرا توی اکلمان و از افری عدواء امدالفصا بره این من چون گاهی اوقات یه رو ما میگیم آدم تحجیب میکنه انصافا این مثالی رو که ایشون داره خیلی مثال عجیب است بعد ایشان یه مقداری هم صحبت کردی که آیا واقعا شافعی قائل بوده یا نبوده آیان خودشون مراجعه کنن دیگه نکتای فنی اینه بارد. و چند تا مطلب فنی داره که اینشان رو فردا میکنیم و الله علیه و محمد الله.